سلام و عرض ادب محضر کاری که عزیزان بزرگوارانی که لطف فهمودن تشریف آوردن به بنشستن سب ما همچون نشست های قبل که لطف میکردن و تشریف بستن استاد اگر ممکنه فقط بزرگواری کنید میکروپونتون را قصد کنید تا بند صحبتم تموم بشه ممنونم خیلی بزرگواری میکنید خب تشریف هرگواری کنم در واقع ایام شهارت حضرت زحر سلام الله علیه ها رو محضر تمام دوستان انشانه که ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید در ترسه نشفتای تجربیات پجورشی استادان و صاحب نظران امشب به نشفت جهد و پنجم رسیدیم با حضور جناب افتاد قجرد استانبل مسلمی رای دکتور غلام رزا بهروزی یک استاد تمام گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرال علوم. خیلی خوشحالی، خورسندی و خدا شاکر که شب در محضر این استاد عزیز هستیم. اگر اجازه بفرمایید فرماییم به, به مناسبت و همچون جلسات قبل که بنده با از استاد شروع میتردم تا یک مقدمه از فعالیت های علمی استاد در ذهن تک تک ما نقش بنده. و بعد از اون از خدمت خودشون به بشید، این جلسه رو هم به همین شکل آغاز میکنیم. جنبشها استاد ازدواج موزیلر، متولد هدایتی سال در سال 63 تحصیلات خود رو آغاز کردند، در خود زاینی هدف ولی از تبلیغ، از سال 66. در حوضی علیه گمتشت با بودن و در تحصیلات دست خارج گوزه و تخصصی کلام اسلامی ست و چهادو به اتمام بسودن بیساز و فوق بیساز رو هم از بخش علوم سیاسی دانشگاه باقی روی علوم بودن در سال 78 و همچنین دوره عالی زبان انگلیسی رو هم سپری کردند ایشون در دین شون سابق الی و حضور در جهات دفاع مقدس بدونه. از سمت شما تو حسابات اینجوری ایشون مواردی که همچنان در اون حضور دارن میتونیم به اینها اشاره بکنیم. ایشون عضو هیئت نیروی گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقر العلوم از سال 82 هستند. مجددن اوز به حیرت ایمی و بابسته دلوح قاید پرجوبی دارشگاه محبوسین از سال 1401 اوز به حیرت اومنهای مؤسسی آمود شعادی راقر اسفحانی از سال 95 رئیس کارگور دارشگاهیان ستاد همه هنگی پاقیت های محدد از سال 96 حضر کارگور مرجعیت علمی قرآن کمی گوج علمی دفتر تات اسلامی غزه گرم از سال و هم و چند سممت سرد میلی هم دارند که از اونها بنده عبور می تا به کتابها و تعریفاتشون به طور کلی برست. استاد با زبان این لیسی و تسلط کامل آشننا و تسلط کامل دارند، از کتاب هایی که تعریف فرمودن سیاست و محتضیت جهادی شدن و اسلام سیاسی در ایران اخلاق سیاسم نداری بلایت فقیق در کلام سیاسی شدیه امران نروزا نهی از نون کرد از دیگاه شهیدون و دو کتاب زبان سیاسی اسلام و دین در عصر عمومی رو هم ترجمه فرمودن از مقالات علمی ایشون والا بهطور خاص کارهایی که در سالهای اخیر انجام دادند من چند نوز مهدب دوستان نام میبرم کاربرد آینده پژوهی در جامعه شناسی توسعه، نقش و جایگاه های مهدویت در تحقق اهداف بیانیهای باب دوم انقلاب اسلامی راهکارهای مواجهه با مخالفان سیاسی در حکومت اسلامی مبانی انسان شناختی مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی نقش رهبر در پایداری انقلاب اسلامی ایمان با تأکید بر قرآن گام دردان و آثار دیگه آثار علمی تربیجی تخصصی و پژوهشی و همچنین همایشی ایشون متعدده که دوستان میتونن به بزر... رضاحت شما مراجعه بکنن برای اینکه در تک, تک این آثار اشراف داشته و اگر امالیه بودن مطالعه بکنم از کورسی های نبا نظریه که ایشون برگذار فرمودن اناویرشون من یاد میکنم این کورسی ها ترویجی های تردیجی بر نظریه سازی بود امکان یا امتناع تبیین فرصفی قیبت با روی کرد تاریخی تکامل باشن همداری و همزبانی دولت و ملت مشکلات و راهکارها ها اعضیابی روش داده بنیاد در استخراج نظری علمی از مونتونه دینی کارکیت های محضبی انسان 250 سال اعضیب که نقام مردم رهبری سنایوهای بازگشت پدری انقلاب اسلامی و ذرخیت شناسی عربانی در نمی نسازی ظهور با تحکیل و برنامهات حضرت هایتالله خامنه ایم بعد ظهور اصطاق فعالیت هایی که مرتبط میشه به هر کدوم از تخصیصهایی که ایشون دارن جمله قرآن سیاست، و سیاست و و آینده پژوهی به صورت مجرده هم میزهر شده ولی من فکر میکنم برای که بیشتر در محضب خودشون باشیم از این موارد گذر کنم و چند مورد از جوایز و استخاراتشون رو بگم تا رجومشون به پاران درسه به هم. از جمله این استخارات کتاب جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران برگذیه دوره کتاب سال بوده در سال هشتاده و دوباره همین کتاب برگذیه ۳۲۰ جشواره کتاب دین و پجردش های برتر سازمان و اسلامی در سال هشتاده هست. کتاب سیاست و مهدلیتش رو رضوه دومه، اولین همایش ملی دو سالانه کتاب مهدلیت در سال نوردویه و دو مقاله مبانی اسلامگرانی و نابسندگی تحلیخ های قلبی که منتخب اجلاس جهانی علمای امت و بیدایی اسلامی و مقاله مبانی اخناب و سیاسی در اسلام برگزیره چهارونی جشوار مطبوعات بهدار فرهنگ و اشاره اسلامی بوده می‌کنم تا همین جا بکنید، حالا بپرید حالا نشانه خود استاد استفاده می‌کنی برای ای که در جامعه خیلی چشمگیر بود نسبت به جامعه پیشین حضور ایشون در نشست‌ها و سخنرانی‌ها در خارج از ایران و کشورهای مختلفی چک می‌کنم از این نظرم هم بتونیم. از تجربه پجوشش رو بشید استاد در خدمت شما هستیم شهر و بعد از پایان سخنرانی شما بنده سوالا تا محضرتون می‌خونم و از محضرتون دوباره استفاده دواریم. در خدمت‌تون هستم اگر اجازه به فرمت شروع کنیم. فقط درخشیدی آیدی اسم سابونی. آقای خانه سابونیشون دستشون دستشونو بلن می‌کنن. ممنون تا آخر جلسه بزنه‌ی رئیس هند رو نزنیم. چون سوالاتی که دارید ان آخر شما بسم الله الرحمن الرحیم اللهم وفقنا لما تحب وتروا و تربا بحق سیدنا و نبینا و المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و و اهل بالا و اهل بیت طیبین توفیقین. بسیار خوشبختم که در محضر اساتید و پجوهان و پژوهشگران جامعه علمیمون هستم و بنده به از بزرگانی که تجربیات خودشون رو در عرصه پژوهش ارائه فرمودن قبول کردم که بتوانم با ارائه تجربه خودم هم از نظرات دوستان بیاموزم و هم اگر کوچکترین تجربه داشته به بویژه به نسل جوانمون انتقال بدیم انشانله من در خدمت هستم استاد ما کاملا آماده ممنون میشم شوید بفرموید که زمان ارائه بندر هم به بنده و هم به دوستان یادآوری بفرمایید که به شیوه سوالاتی که بیان خواهید فرمود زمان کاملا در اختیار خود شما برخی از اساطیب حالا به زور متابقه یک ساعت، برخی از اساطیب یک ساعت و نیم و یا حتی بیشتر صحبت میکنن در افساس زمان بندی که مدر نظر شما نقدار نکاتتون ادامه پیدا بکنه بسیار استفاده بکنین بیشترانه ای نداره سوالات هم در آخر دارده سوالی هست دوستان دوست دوستان میپرسن در افساس صحبت های شما و اونهای شعلا شما خب من پنج محور رو برای ارائه تجربه پژوهشی زیسته خودم انتخاب کردم که خدمت عزیزان تقدیم بکنم محور اول چگونگی ورود من به حسه پژوهش است خب برای این مطلب رو بتونم از بکنم، دبیر جلسهمون احمد کشیدن خلاصه ای از رزومه بندر رو به رایه فرم بودن. من سال 63 بعد از اینکه که توفیق بدا کردم در سن 14 سالگی به جبهه برم توفیق بدا کردم که علاقمند بشم به حوزه. قبل زمینه هم وجود داشت که من به حوزه علاقه من شدم. اونم این بود که پدر بنده که خدا خفزشو کنه و همواره از بنده حمایت کردن روحانی هستند. و این سبب شد که من در خانواده روحانی بزرگ بشم و طبعا اون فرهنگ و زندگی و زیگه طلبگی و روحانیت در خانواده ما وجود داشته باشه. برحال خودم احساس میکنم که جبهه و اون حال هوای معنوی جبهه بی تاثیر نبوده که من شخصا علاقه من بشم به حوزه و اون به سر زمین خانوادگیم کمک کرد و نهایتاً سال 63 در حالی که هنوز دوم دبیرستان رو در رشته ریاضی فیزیک تمام نکرده بودم علاقمند بشم وارد حوزه علمیه تبریز بشن سال 66 هم توفیق پیدا کردم که وارد حوزه علمیه قم بشم. ما سالی که وارد حوزه علمیه قوم شدیم سال 66 67 سالهای آخر عمر حضرت امام بوده و یک موجی از توصیه حضرت امام من یادم هست که به رشد علوم انسانی در حوزه های علمیه وجود داشت خب به خاطر همین بود که نسل جوانی از طلاب تر دانشگاه در دانشگاهی حضور پیدا کردن دانشجوها می‌خوندند در حوزه به شکل سازمان یافته دارالعلم مفید در رشته شیراز شروع کرده بود در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، کلاپ الاسلام و المسلمین آل رفعت، سید محمد طقی آل غفور بعد از اینکه از نمایندگی مجلس دورشون پایان پذیرفت، مشرف شدند و قوم و با همفکری و همکاری دی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کتابخانه سیاسی تأسیس کردند. خب او زمان کتابخانه سیاسی مسبوق به سابقه بود قبل از این کتابخانه سیاسی دفتر تبلیغات سید مهدی هاشمی که مشهور بود و در دفتر آیت الله منتظری حضور داشت یه کتابخانه سیاسی و به تبع این کتابخانه یک دوره های آموزش سیاسی رو در قم شروع کرده بود اما چون قضیه انحراف مهدی هاشمی نا پیش آمده بود دفتر طبیقات کتابخانه سیاسی رو مستقل ایجاد کرد و به تبع اون آموزش های علوم سیاسی رو ارائه کرد من از سال شست و هفت که بعد از حدود یک سال در قوم بودن علاقه شدم به این دوره و از همون سال شست و هفت آموزش عمومی و آزاد سیاسی رو در قوم تجربه کردیم اساتیدی از, از تهران و قوم می‌آوردن پنجشنبه جمعه مباحثی رو ارائه میکردند. به تدریج این کتابخانه سیاسی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قوم به فکر این افتاد که مؤسسه آموزش عالی تأسیس بکنند الان شاید نسل جوان ما براشون تعجب انگیز باشه ولی اون زمانی که صحبتش هست آغاز دهه هفتاد اصلا ما دانشگاه خصوصی چندان نداشتیم دانشگاه آزاد اسلامی تازه در حال تکون بود و دانشگاهی کسی مؤسس آموزش عالی دانشگاه خصوصی بخواد بگیره خیلی کش داشت اون زمان یادم هست که وزیر علوم در دولت آقای هاشمی رفسنجانی آقای دکتر هاشمی گلپایگانی بود خب خیلی رفت آمد شد که نهایتا سال هفتاد و دو سه اجازه یک دانشگاه مجوز بنیادی برای مؤسسه آمز جالی ارائه شد که بعدها نهایتا این مؤسسه با ارتقا در دهه هشتاد به دانشگاه باقرالوم تبدیل شد ما از سال 67 تا 75 مقطع کارشناسی علوم سیاسی رو دنبال کردیم و سال 75 تا 78 مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه باقره لوم ادامه تحصیل دادم سال 78 برای من بسیار سال خاطر مندلی بود سالی بود که اولین سفر حج برای بنده فراهم شد سالی بود که من در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس قبول شدم شاید تصورش سخت باشه اون زمان اصلا رشته علوم سیاسی هم در کل مقاطع دکتوری اینطور نبود که راحت و با سهولت در دسترس دست باشه کلی افراد امتحان میدادند فرض کنید که از 300 400 نفر سه چهار نفر تعین نفر می‌خواستن برای دکتری انتخاب بکنن. یک رقابت های سنگینی هم وجود داشت، اما به من در همون سال اول آزمون دکتری که وارد شدم، توفیق پیدا کردم در دانشگاه تهران بود، شی دکتری تجربه بشم. در ولات به مثبت دیگری هم در سال در زندگی من بود که من سال 78 رو همیشه به خاطر دارم. خب از سال هشتاد همراه با تحصیل در وقت دکتری تدریس من هم در گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران نعاز شد و چند سال در دانشگاه تهران در دروس معارف تدریس داشتیم و به تدریس جذب هیئت علمی در پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی شد با عنوان مدیر سیاست اون تدریس یه دو سالی اونجا خدمت کردند و نهایتا سال هشت و دو چهار علمی دانشگاه باقرالوم علیه السلام شدم که تا الان ادامه داره مقاطع و رتبه های دانشگاهی رو هم تایید کردم که توفیق بدم در سال در سال هفت به رتبه استاد تمامی برسم همیشه اینو شاکر اساتیدم بودم من وقتی که به این رتبه لایل شدم زنگ زدم همه اساتیدی که در مقاطع لیسانس و ارشد و دکتری داشتم ازشون تقدیر و تشکر کردم در حوزه هم من از سال 63 که وارد حوزه شدم تا ساعت رو مقدمات و ساعت رو تمام بکنیم. از سال دو, دو در سومین دوره تخصصی کلام در مقطع سطح چهار در مؤسسه موساده ایچولال اوزمان صبحانی ورود کردم و تخصصی کلام رو شروع به تحصیل کردم. خب من در حوزه علاقه هم بیشتر در کلام و فلسفه بود تا فقه و اصول به این به تخصصی کلام اسلامی وارد شدم. خاطره ای رو از همون سالهای اول تخصصی کلام با استاد بزرگوار و مرحوممون آیت الله حسن ممدوهی از علمای بزرگوار کرمانشاهی که عضو جامعه مدرسین هم شدند و عضو مجلس خبرگان رهبریم شده بودند. ما تلموز در محضرشون نهای طولیقه و, و بحث فلسفه رو داشتیم به خاطره جالبی اون سالها دارم سال 72، و دو, دو. استاد یه روز من هنوز با لباس شخصی بودم معمم نشده بودم استاد منو صدا زد گفت که احساس میکنم که دروس دانشگاهی هم میخوانی گفتم که جناب استاد ما دانشگاهی میخوانیم اما در دل همین مراکز حوضویه این که مستقلا به دانشگاه بریم و رشته دانشگاهی بخوانیم پس توضیح دادم که در دفتر تبلیغات همراه دروس و این مقطع لیسات رو سیاسی و جناب استاد به من خیلی نصیحت کردن ابراز محبت میفرگوندن که هایی سوالهایی وسط درس میخورسیدن من از جواب داده بودن به بنده علاقه شده بودن و به تشویق بیکردن خب از جمله به من فرمایش من بودن که شما چرا دانشگاه رم میخانید همین حوزه کلام و فلسفه رو تمرکز کنید بیشتر اثر خواهید داشت و مثال میزد نصیت میگم اگر حتی ابن سینایه با اون هوش برتر اگر ابن سینا هم خودشو درگیر پزشکی و نوشتن کتاب و قانون اینها نمیکرد خب الان در فلسفه بسیار تأثیرات کفترده رو داشت این ابن سینایی به این شغرت با تمرکز یعنی نمیتونه بهتر اثر بگذاره همون لحظات که استاد به من فرمایش فرمودند من یه نکته‌ای رو خدمتشون رز کردم فتم استاد من خیلی علاقه دارم که ترکیبی از همین رشته کلام اسلامی رو با سیاست برقرار بکنم و کلام سیاسی رو میخوام در خودم قرار بدم خب، خوب حال استاد نظرش این بود که من نه تمرکز بکنم در فلسفه کلام و عرفان و اینجور مسائل حالا ما عملا زندگیمون ترین مسیر افتاده بود. و به خاطر همین هم بود که من تقریبا سه چهار سال از عمر علمی خودم رو در حوزه کلام سیاسی در واقع سفری کردم پایان نامه مخته کارشناسی ارشد من هم کلام سیاسی شیعه بود و حدود شاید نقطه مقاله هم اون مخته تونستم بسخواهی میکنم در حوزه کلام سیاسی در واقع بنویسم مثل اولین ای که در حوزه کلام سیاسی منتشر شد قاعده لطف در کلام سیاسی شیعه بود حالا بعدا شناسی کلام سیاسی شیعه مقایسه کلام سیاسی و فلسفه سیاسی و کلام سیاسی شیعه در پسنامه شیعه شناسی و موارد دیگری که با برحال برحساس این محوریت کلام سیاسی سپری شد خب در مخته دکتوری هم من که سال هشتاد و هفتاد و هشت شروع کردم تا سال هشتاد و پنج من بیشتر به مباحث اسلام سیاسی اسلامگرایی در ایران علاقمند بودم و کتابی هم که اشاره برمودن منتخب شد و برگزیده شد جهانی شدن و اسلام سیاسی در ایران بود که اولین شاید بازخوردی از این تأثیرات یا باکنش های به جهانی شدن یا تأثیرات جهانی شدن فضای فکری سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود که این کتاب مسئولیت توضیح و کنش های, جریان های سیاسی اطلاع رو به جهانی شدن داشت. سالهای 70 هفته های اولیه جهانی شدن در جامعه ایرانی ما شکل گرفته بود و مثل الان که امر بدیهی شده نبود. جانشه امر کاملا جدید. جا پرنگیز شگفت انگیز بود که پژوهشگران رو به خودش علاقه من ساخته بود. خب من هم در اساس همین فصاله دکتورین رو جهانی شدم و اسلام سیاسی در ایران قرار دادم که بعدها خاطرات خوبی از این کتاب موند همون کتاب سال دین سازمان تبلیغات اسلامی که اشاره فرمودند کتاب اه، منتخب شد و این کتاب علاوه بر الا جوایزی که گرفت یک جایزه معنوی ارزشمندی داشت اونم عمره بود که از تو خدمتتون همراه جوایز کتاب سال ارائه شده بود البته این عمره جالب بود که حضینه هم با خودش بود یعنی رایگان ارائه شد و همچنین کتاب بوزم همون سالهای هشتاد و برگزیده شد اونجا مالا بر جوایز مادی یک عمره انتخاب ارائه شد اما عمره رایگان نبود باید پولشو قلوش بنده که حج مشرف شده بودم خب توفیق بود که این دوتا عمره رو به بستگان هدیه بکنم جالب بود که این کتاب هم برای من خاطره شد هم دو تا عمره برای بستگاه ما هدیه کردیم تونستن و بشن به عمره خب نوبت عمرم راحت نبود شاید یه نفر پنشیس سال باید نووت می سال تا نووت عمرش میشد و این دو تا عمره ریبا بود برای ما جالب اینجاست که این کتاب جانشاب اسلام سیاسی در ایران سال 92 دو هم که انجمن سیاسی حوزه علمیه قوم به مناسبت پنجاهمین سال نهزت امام در سال 1942 یک جشنوارهای رو برگزار کرده بود این کتاب مجدد منتخب شد و اونجام جایزهای به او اختصاص پیدا کرد البته جایزهشم بامزع بود و جالب بود این کتاب در اون جشنواره پنجهمین سالگرد نهزت امام خمینی به تعدادی از کتابها و آثار به عنوان جایزه نفر اول و به تعدادی جایزه تقدیر جایزه داده بود. خب برای ما هم جایزه شایسته تقدیر تعلق گرفته بود. ولی در جایزه‌ای که انتخاب شده بود، یک سفر بالا پایین گویا شده بود. چکی به ما دادند که اون سال سال 92 12 میلیون تومن و خب همه شاد بودند و به یکی هم که سفرش اضافه شده بود قدر نبرات اول نزدیک میلیون ملیون تومن اون زمان خیلی عدد بالایی بود نگو که اون منشی انجامن میخواسته یک میلیون و پلسد اضافه من بده در این میلیون ملیون ریال یه دونه سفر اضافه شده بود بالاخره همه شاد بودن و جایزهی گرفتن آخرتر به خیلی سفر اضافی باعث شد که چیکارو کار و همون مبلغی که مقصود اولیه بوده بدون اشتباه عرضه بشه خب این فضای فکری تحت پژوهش من بود اما شاید شروع پژوهش من با فضای ترجمه بود سالهای هفتاد هفتاد یک دانشگاه یا هو زمان موسسه آنزشلی باقرلوم دانشجویان رو تشویق میکرد که یک سال زبان انگلیسی بخوانند. من هم به عنوان دانشجو مقتب کارشناسی علاقمند شدم ما چون دوره اول هم بودیم الزامی بود اون دو دوت روزی شیش ساعت درسای علوم سیاسی تعطیل شده بود و این دو دوته همون یک سال تحصیلی ما سیستم ایرفورس نیرو هوایی رو که آمریکاییا ها تدوین کرده بودند و به خلبانانی که به آمریکا یا اونجا میرفتن یا جای دیگه میخواستن خلبانی یاد بگیرن این آموزش زبان انگلیسی رو یاد میگرفتن ما هم تردردردر روزی شیش ساعت یادمه که زبان یاد گرفتیم و باعث شد که ما هم مکالمه زبان رو به اطحاب بتونیم بحرمند بشیم. این کاری که سال 70 زبان رو خوندیم، 78 اولین ثمره تبلیغیش آشکار شد که همون تشرف به حج بود به عنوان مبلغه به زبان انگلیسی برای حجاج انگلیسی زبان. خب، البته پیشتر هم این زبان انگلیسی برای ما آثار داشت. اونه این بود که همو سال 72 اینها من علاقمند شدم به ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی خدا رحمت کنه مرحوم استادمون دکتر جلاب حجیت الاسلام و, و دکتر داود فیرهی استاد فقید دانشگاه تهران که ایام کورونا به رحمت ایزدی پیوستند خیلی مخشوق بود و اون سال ما براساس همین تشمویرشون چون یک کتابی از آقای بردرلیوی لوئیس کپی کرده بودن اواب بودن دانشگاه باغروم یا دا محم آشنل باغروم و ما رو تشوییر کردن که و بنده و چند نفر دیگر رو کتاب رو ترجمه بکنیم به فارسی خب این کتاب اولین کار پژوهشی من در ترجمه شکل گرفت استاد دکتر فرهنگ رجای اون سالها در ایران تشریف داشتند این ترجمه بندرم یک تطبیق دادند که قوام بهتری پیدا بکنه و اولین اثر علمی بنده در قالب ترجمه کتاب زبان سیاسی اسلام برنارد لوئیس شکل گرفت بهرحال برناد لوئیس یک اسلام شناس غربی بود الان هم شاید انتقاداتی به ایشون داشته باشیم بلازمش و چگونگی روش علمی و اینها اما حال واژگان سیاسی اسلام رو ایشون جالب کرده و در پنج فصل که من اون کتاب رو ترجمه کردم خب اون سالهای 72-73 بود که به نظرم سال 72 پنج و هم کتاب یا کمی بدتر کتاب منتشر شد. ترجمههای دیگریم دیگری هم داشتم. خب این زبان هم خوب بود هم یه مقدار رحزن. شاید زبان باعث شده بود که ما به جای پژوهش کردن به ترجمه کردن بیفتیم. شاید از ابتدا به پژوهش کردن می افتادیم. بیشتر ثمره علمی بر خودمون عائد میشد. اما ترجمه برای چند سال اول زندگی علمی من رو به خودش معطوف داشت. سه چهار تا کتاب حالا ترجمه کردیم که زبان سیاسی اسلام یکی از اونها بود و یه دو تا کتاب دیگر که متنسندی اونها منتشر نشسته میکنیم. اولین تجهیش. دیه من در قشونه ارشد بود که بحث ولایت تا در کلام سیاسی شیعه بود همون روی کردی که ترکیب کلام و سیاست رو دنبال میکردم این روی کرد باعث شده بود که من اولین پای نامه یعنی پاینامه نامه ارشد خودم رو با آیت الله مردت و دکتر حاتم قادری این دو بزرگوار من خای بگیرم و کار رو انجام بدم خب مدتی همین باید که من حوزه کارین کلام سیاسی باشه مقالاتی که اشاره کردم حدود تا مقاله در حوزه کلام سیاسی به طبع این شروع شد و این باید شد که من از ترجمه این فاصله بگیرم و وارد پژوهش بشمم خب دیگه بعد از اون تجربه در قالب مقاله یا کتاب ها اینها شکس بگیره. حوزه های علائق پژوهشی یا مطالعاتی بنده چند تا حوزه با رویکرد سیاسی بود. در حوزه با کلام و فلسفه عجین شده بودند و براساس اون پای وقتی علوم سیاسی هم که خواندیم فلسفه سیاسی و کلام سیاسی یکی از رویکردهای اصلی کاری من تا الانم باقی مانده اندیشه سیاسی اسلام اندیشه سیاسی و در درون کلام اسلامی بحث مهدویت و منجیگرایی به نوعی توفیقات من بود که مدت زیادی رو در حوزه مهدویت با نگاه سیاسی دنبال بکنم. کتاب سیاست و مهدویت که به بهنوعی منتخب به جشنواره کتاب دو سالانه کتاب مهدویم بود محصول همین رویکرد من بود که هم تدریس در رشته مهدویت سطح سه و سطح چهار پیدا بکنم و همین کتاب رو که مجموع مقالاتی از بنده بود اینجا بتونم عرضه بکنم و خاطرات خوبی اینجا وجود داشت و شکل گرفت خوب به تبع مهدویت آینده پژوهی هم این سالهایی که رز میکنند صا سالهای هشتاد هشتاد یک و دو همراه با مهدویت آینده پژوهی را هم پیوند زدم به مهدویت البته مهدویت و آینده پجوهی دوتا حوزه مطالعه هستند اما به هم مرتبط هم هستند و از این جهت هر دو اشتراک در مطالعه آینده دارند این اشتراک خوبی بود طرف شد که من آینده پژوهی هم دنبال بکنم. شاید حدود 13 14 سالی است که من آینده پژوهی رو حالا به ویژه با روشکرد مهدوی و یا سیاسی این ایده پژوهی سیاسی رو به تونم دنبال بکنم و توفیقی برای بنده بود یک حوزه کاری دیگری که در حوزه سیاسی برای بنده توفیق حاضر شد و خیلی لذت بخش بود قرآن پژوهی سیاسی و تفسیر سیاسی بود دوست بزرگوانمون برور گنابیمون جنابای دکتر رضایی اسفحانی سال هشتاد و بود خب ما تشویق کرد و دعوت کرد که در خصوص سرف قرآن و علوم سیاسی کمکشون بکنیم من از تراحان رشته گرآن و علوم در گرایش علوم گرآن و علوم سیاسی بودن خب بعدها از سال فکر بکنم هشتاد و هشتشتاد لبیور اولین دانشان مقطع دکتوری هم گرفته شد و من در مدت ها افتخار ها که در محضر قرآن کریم هستم که بتونم تفسیر سیاسی قرآن کریم رو کار بکنم در آخرین حج تمتعی که قبل از کرونا داشتم تنگامی که داشتم تواف زدا انجام می دادم از خدای کعبه خواستم که توفیق یک دوره تفسیر سیاسی قرآن کریم رو برن عطا بکنه که دارم کار میکنم یک از حوضای کاری من هست و امیدوارم که بتونم این وفایی که با کعبه و خدای کعبه داشتم محقق بسازم و بسیار شیرین هست خب حوزه‌های کاری و علایق علمی پژوهشی بنده هست که خدمت رو کرد. اما در خصوص محور سوم عرای زم، های عرصه پژوهش در چگونه باید باشه؟ حالا تجربیات این سالها اخض شد به بنده، به خاطر اون نگاه فلسفی که داشتم علاقه مند به مباحث روشی و روششناسی و فلسفه علم شدم و این کالان هم در روچهت های بنده باقی اون بحث روش علم شناسی علوم و اخیرا هم با نگاه اسلامی سازی و قرآنی سازی علوم بحث مرجعیت علمی قرآن کریم رو سالی است که در دفتر تبلیغات اسلامی و ظلمی قوم دنبال میکنی و جاهای دیگر این یک فرصتی شده. من بر اساس این تجربیات یک سری با رو در عرصه پژوهش شناسایی کردم که اینها رو ما بتونیم اختضاعات پجوهشه یکی از اون چیزهای برجسته این است که ما باید با نیازهای جامعه علمی خودمون و همچنین جامعه خودمون پیوند برقرار بکنیم مدتی رسم بوده که افراد علم رو فقط برای علم کار میکردن. نسل لخصد دانشگاه همینه. دانش برای دانش. اصلا دانش رو حالایی که کی بخواد استفاده کنه. کدوم مسئله اولویت داره اصلا نگاه نمیشده. دانشمندان متوقل و غورگر در دانش بودند حالا مطالبی چاب میکردن. آنچه که خودشون تشخیص میدادن و نیاز داشتند. اما این نوع دانش هرچند مفید بود اما پیربازده نافع از درون او چولید نمی شود. تا بیاد علم نافع جامعه مردم نظام های سیاسی و جهان رو حل بکنه بده مفید این تنراتان نبوده. کیلابی کی جامعه این مطالعات صورت میده. خب در حوزه علوم به سیاسی ما در اون ابتدا میدیدیم که کتابهایی که نوشته میشود، خب امدا یک گفت برداری گزینه یا حتی ترجمه از آثاری بوده که در غرب صورت گرفته من بارها این رو از خودم شنیده بودم که بیفرم بودن خب گایی ما میبینیم کتابی چاپ شده و یک آقایی یک استادی این کتاب رو چاپ کرده اما مطالبش خیلی آشناس تا بیدونه بابا این مطالب مثلا کتاب انگلیسی ایشون اومده این رو به اسم خودش چاپ کرده و این آسیب هایی بود که مثلا ما در عرصه پژوهش داشتیم و هم تعامل کم بوده و هم تولید کم بوده بذاب بایسته اول پژوهش این است که مسئله محور باشه ما در خصوص مسئله محوری چند تعریف از مسئله علم داریم خب مسئله علم عبارت هست از یک معنا از بارت از محمولات موضوعات یعنی اون مباحثی که حول حوز یک موضوع علم شکل میگیرد میشن مسائل حالا این مسائل اهم از حل شده و حل نشده است در رؤوس سمانی رایج بوده که علما مسائل علم رو شناسایی میکردن به متعلمین میگفتن که این علم حاوی این مسائله اما مرادشون اهم مسائلی که بحث و گفتگو شده پاسخ یافته و همچنین مثال از مسائلی که الان داره که بحث گفتگو بشه مسئله رو به محمولات بلقوه و بلفله بر موضوعات تعریف میکردند خب این خیلی کاربردی نبود فقط علمشناسی میومد مسئله رو به این معنا تعریف میکرد دومین معنایی که از مسئله وجود داشت و الان هم به نوعی دارد مجهولات علمه وقتی میگن مسائل علم یعنی اون مجهولات حل نشده علمه حل شده ها که دالش موجوده حل نشده ها رو قایی میگن مسئله خب اینم هست اما شاید این مجهولات اولویت دارشون بر نشده ممکنه مسائلی مجهول ما باشه ولی اصلا به درد کسی هم نخوره سومی معنای مسئله مجهولات اولویتدار هست که این مجهولات اولویتدار باید برجسته بشن که وقت از این معنای سوم به نیاز سنجی هم یاد میشه که میگن نیاز پژوهش چیه؟ ما کدوم مسائل و الان اولویت اهمیت و ضرورت داره که ما انجام بدیم. الان در مراکز علمی هم از خوزدی و دانشگاهی مسئله رو به این مجهولات مرد نیاز یعنی معنای سوم به کار میبرن که از تاخل بردتون معنای چهارم بشدیه. معنای اول شد محمولات موضوع، معنای دو مجهو از مجهولات معنای سوم و سوم چه معلومات مجهولات اولویت دارن برای چهارمی هم که در واقع برعکس الان دنبال میشه مسائل مدیریتی یا کاربردی هستند اینا لزوما از سنخ مجهول شد نباشند ولی در یک جامعه فاصله اون جامعه با وضع مطلوب خودش رو باعث شده که مثل یک طبیب درمان بکنند مسئله محوری گاهی در معنای همین چهار روم به کار گرفته میشه که براد از مسئله محوری همین حل مسائل جامعه بالفرض ما مثلا میدانیم که انحرافات اجتماعی رو چگونه باید بحث گفتگو کنیم اما انحرافات اجتماعی در جامعه ایران این میشه نگاه مسئله محبت اما ممکنه در این مسئله محوری کاربردی بردیم مجهولاتی وجود داشته باشه فقط بخواستم تاکید بکنم که لازم نیست این دو ما محدود بکنیم به از خدمتتون مجهولات معلومات ما علم مع... کلی معلومه مثل یک طبیب الان طبیب میدونی که سرماخوردگی درمانش چیه. ولی وقتی که یک نفر مریض میره نسبت به بدن او علمش رو کاربردی میکنه و نسخه میپیچه این کاربردی بودن به این معناه هست خب بس مسئله چیزی که, که امروزه مورد نیاز هست توجهه که به کاربردی بردی شدنه. پجروهش میانجامه علم نافع تبدیل بشه یعنی شما اون مجبولات اولویت دار یا دا اون مح... پجروهش های رو که بتونه نیازی از جامعه رو حل بکنه باید اولویت قرار بدین در خصوص باعثه های در جامعه امروز ما یک بحثی هم وجود دارد، اونم این است که ما باید به پژوهش‌های میان رشته هم توجه جدی بکنیم. خب الان پیچیدگی زندگی باعث شده که تنها از یک منظر نتوانیم مسائل رو حل بکنیم، به عنوان مثال در رشته خودمون علوم سیاسی. خوب علوم سیاسی نمیتونه خودش و از روانشناسی مستقلی بدانه گای وقتا ما برای شناخت محیط خودمون نیاز به استفاده روانشناسی در امر سیاسی هم هستیم یا اخلاق سیاسی یا جغرافیای سیاسی همه اینها میان رشتگی هستند که ما باید مورد توجه قرار بدهیم یکی از چیزهایی هم که اولویت پژوهش ما به نوعی هست عبارت هست از اینکه که ما باید به منابع اصیل علمی مراجعه بکنیم. تراث گذشتهمون خب این بسیار اولویت داره. تر تراث گذشتهمون ببیشه منابع وحیانی قرآن و حدیث بسیار باید. من در تجربه علمی زیسته خودم اینو واقعا احساس بود و برخی از بزرگانم دیدیم که خب چنین روکرد رو داشتن. البته این غریب و جدید نیست. این در سنت از خدمتتون در سنت حکمت متعالیه صدرائی وجود داره. ملصد را کسی بوده که حد شکم بود و حکمت رو از اون چارچوب محدود حکمت مشائی و به تعبیر خودش حکمت بحثی بازتر بود به افتدا ترکیب کرد و بعد بالاتر از اون آمد به سراغ تفسیر و قرآن و, و سپس حدیث یا و امان قرآن و حدیث رو حال فقط این فهم معارف بسیار کلیدی و جدی دا من این احساس نیاز رو واقعا الان میکنم و بعد از شاید 20 سی سال بیست سال و خورده ای از تحقات مطالعات سیاسی در شرق و غرب آخر تازه فهمیدیم که آب در کوزه و ما تشن لوان میگردیم چرا قرآن کریم به عنوان منبعه و خدای خالق راه هم برای بشر برستاده ما چرا مقفوله؟ بلده خیلی شیرینه که من میبینم ادهی از تجویشکران سیاسی ما هم به همیت و جایگاه قرآن کریم پی بردن ما در دانشگاه باقران روم مدت ها بحث‌های قرآن و حدیث رو در اولویت قرار بدیم تعدادی از ما اساتید ما با نگاه قرآنی عجین هستند دوست سه بزرگوارمون جناب دکتر نجع اللقزایی خب شات 2450 می جلسه حکمرانی در قرآن کریمش رو تاره برگزار میکنه همراه ما در اداره اون رشته قرآن و علوم تدریسش بوده و نسلی از اوزویان تربیت پیدا کردند و آمدند استقبال کردن از این منده وح در پژوهش‌های های علوم انسانی خب به این خاطر فکر بکنم یکی از چیزهایی که ما باید مورد توجه قرار بدیم همین عرصه پژوهش با بهرگیری از منابع اصیل علمی هست که طبقه نظر برخی از سنت هرایان حکمت خالده همینجا علم لدونی الهی و علم مطلق الهی رو ما چرا خودمون رو محروم بکنیم که دنیای مدر مدت ها رو از این علم لدونی و علم بردتر الهی محروم کرده بود و در حالی که الان ما برگردیم به شکل جدی و این رو برای جامعه بتونیم در مقام بیاوریم یک سری ضعف هایی در عرض پژوهش در جامعه ما وجود دارد که به نیاز به امیختر و تخصصی تر شدن پژوهش ها هست که وقتا پجوهش ها در سطح میمانند عمق خیلی وارد نمیشند دوباره چاپ شده ها به درسته اشته ها, درست ها به چاپ شده ها و جور دور خود مبایی میچرخید خب این آسیب های جامعه ما هست مغفول موندن از نیازها یکی از آسیب های ما هست عدم همه صحیح و شایسته در پجروهشی جامعه هم یکی نیازهایی است که یا طرح چیز که آسیب ما هست باید نیاز رو ما توجه بکنیم و درمان بکنیم و یکی از آسیب های دیگر تجاری شدن پجروش های ستیه با متاسبان الان میبینیم که کسانی مدارکی میگیرند که خودشون ننوشتن یعنی سفارش هایی دادن کتانی کارشافکان هستند یه رساله سرهم میکنند از این دادهای های موجود از رساله های موجود و به خورد جابعه میدن و در هایی مدرک میگیرند واقعا در حوزه پژوهش دادشویی ما این آسیب رو به شکل جدی داریم هرچند سازکارهایی مثل استلال و مشابه یابی سرقت و ورسلله الان پررنگتر شده اما هنوز هم ما جاهایی داریم که به شکل های هوشمندانه دارن از این مشابه ها هم گذر میکنن ولی زمین است که اینکه کس دیگری برای فردی که مدرکی میخواد تحصیل بکنه بیاد تجزیه انجام بده حتی هیچ سرقتری هم انجام نده خود این سرقته یعنی سرقت عدم تولید توسط اون کسانی که مدرک می و بعدها برای سال این مدرک در جامعه ما مدعی می شوند. خب این یکی از آسیب هایی که ما داریم. یکی دیگه از آسیب هایی که پجوش در جامعه علمی ما داره این است که ما هنوز تحت سلطه دانش غربی هستیم. وقتی از سلطه و هژمونی دانش غربی سخن میگیم ببینید در اشتای علوم انسانی هنوزم میبینیم که یک نفر مؤمم حوضوی مثلا بایا که مدعی هم هست اما هنوز یک اصولی از دانش مدرن رو حفظ کرده هرچی قدر باش ممایزه میکنی که آه چه ضرورتی داره که علم به این معنای که علم ساینس تجربی معنا شما معنا بکنید علم آگاهی سازمانیافت است چرا ما نتونیم این آگاهی های رو غیر از مدر با سلط زدایی و سیدر از دنیای مدر درائه بدیم خوی یک زمان دالش چون پوزیتیویستی لیبرالیستی سوسیالیستی مارکسیستی، سلطه داشت خب الان سلطه از اونها اومده به روی کردای نسبی گرای پسامدر خب پژوهشگر برچسته داشتیم که عمرش رو همین بر قیل و انتقادی فوکویی استوار کرد اما خب حقیقت نا کجاست آیا همه حقیقتها تازه و جلی و مجول و به حساب هستند یا اینکه ارزم این است که حقیقتی هم وجود دارد ما در نگاه وحیانی که با فلسفه ما هم ما هم فلسفه مطالعه ما خدای خالق هست که میارها را جعل می کند الحق من رب که فلا تکونن من المنترین اما متاسفانه به خاطر حاشیه رفتن خدا در زندگی جامعه غربی چه در دوره مدل، چه در دوره پس مدلش، مدرلش خب این گرایی ها وجود داره خب این رو بخواستم ارز بکنم که روزگاری های اگر دانش های پوزیتیویستی و مدل هجومونی جامعه علمی ما داره در دانشگاه الان همه با چرخش غرب به سمت پس ها اون حوزه‌های های دانشی داره سلطه پیدا بکنه یا پیدا کرده است خب اینا چیزایی هستن که دغدغه هایی هستن که من به تجربه زیسته پژوهشی در جامعه امروز مشاهده میکنم اما محور پنجم من توصیح هایی رو به پژوهشگران عزیز و جوانمون دارم من چند سالی است که به خاطرمون مطالعات آینده آینده پژوهش خودم همیشه در مقصه فتسه حوزه یا ارشد، خالصی ارشد. خب کارشناسی ارشد و فتسه حوزه مقصدی است که شخصیت پایه اولیه علمی اون فرد در مقاطع پیشین شکل گرفته بر آماده جهش هست. خب طبعا به کرده که وارد این مقصه کارشناسی ارشد شده. اما با این حال می‌بینیم که بسیاری از جوانان ما زیگزاگ حرکت میکنن علم انباشتی ندارند، شاخه به شاخه میشوند بسیار تاکید میکنم که این عزیزان در این مختل سعی خودیابی بکنن و همه لائم رن عرف و قدره یا زیبا از امیر علی علیه السلام هست خدا اون کسی را که خودش رو شلاغ قدر و اندازه خودش رو به خودش رو شناق خودیابی خودشناسی کرد و یک یتعدی توره از اون که باید باشه و هروج نکرد خب همه ما استعدادهای هر چرا مستعدترین ما باشه استعدادهای محدودی دارند خب توان باید یک جا تمرکزی بدهیم اولین توصیه من به پجوشگران جوان است که چشمندان علمی برای خودش رو میجاد بکنند حالا ماها که در اواخر راه هستیم خدا حالا چقدر عمر ما عطا کند اما به هر حال جوان ما که تازه در تحیه سی سال عمر خودش قرار میگیره حالا گیریم که مثلا تحصیلات طول کشیده از بیست و پنج به بالا وارده ارسه پژوهش میخواد بشه خوبه یک افق و چشماندازی برای خودش تدوین بکنه من فورمی از تاورز از چشمانداز چشم‌انداز بی در آینده پژوهی طراحی کردم و به شاگردان عزیزم تقدیم میکنم در کلاس ها که حالا پیچیدشم هم سعی کنیم نباشه چهار مرحله برای این چشمانداز علمی ما تعریف کردیم مرحله اول خودیابی استعدادها اولویتها علائق اهداف آرمانهای ما چیست خب خوشبختانه مراکز استعداد سنج تحصیلی خوشابرهای علمی میدن خوبه که نسل جوان ما بهنوعی با این مراکز پیوند بخورند و اونها رو بتونن از نظرات مشاوران متخصص بهرمند بشند خب کسی که به یک حوزهای تخصص ندارد چرا باید وارد او بشه شاید در یک ای که تخصص علائق و استعداد او بیشتر باشه بهتر جواب بده خب مرحله اول چشمنده خودیابی یا شناخت آرمان علایق و اهداف یک فرده که به چه چیزی تعلق گرفته. و اتا وقتا لازم لازمه که مسیر که کسی آمده برگرده. من بوده که چندین مورد حتی دکتری آمده بود به خانه. من گفتم خب شما مثلا یه بار این سطح چهار و رو گرفتید در فقه هم گرفتید چه نیازی داری که در دکترهای تاریخ باسرم مجدد دکترا بخوانی که چی بشه که دیدیم که دانشجوی ما پیدا میکنیم که کلکسیونی از مدارک که در کارشناسیهای های عرشد های مختلف گاه در دکتری پیدا میکنم خب که چی بشه واقعا زیگزاک رفتن عدم شناخت استعداد آسیبه خب دوم این مرحله در چشم علمی عبارت است از تحلیل عملکرد یا تحلیل روند گذشت حال و فرصت و تهدیدهای های پیش رو خب این پویش محیطی که اینجا مطرح میشه در مرحله دوم عملکرد گذشته و فرصت و به محدودیت های آینده خب یه نفر بخواهد چشمانداز علمی برای خودش بنویسه شاید خوب باشه هست که ببینید حالا اونی که هست اصلا در دسترست هم هست یا نه فرصتی وجود دارد برای پیگیری اون یا باید با اعمال شاقه یا اصلا در حسرتش ببانه خب این رو باید در بیاره قوت و های موجود و فرصت ها و تحصیل پیشرو پیش رو از اگر بخوادن او تی استفاده کنه یا حتی روشهای دیگر مثل تحلیل روند و تحلیل تاثیر رو بر روان شناس های آینده خب اینا وجود داره مهم این که در این دوم یک نفر خودش رو در شرایطی قرار بده که از فرصت ها بیشترین استفاده رو ببره و حتی چالشان رو تبدیل بکنه به فرصتهای جدید برای خودش. مرحله سوم چشم انداز علمی فردی برای دارش مختلف کارشناسی ارشد، تصویر آینده مطلوب با ترکیب این دو تاست. هم مرحله اول علایق اولویت اهداف و هم پویش محیطی ترکیب بشه من بیام, بیام. من پنج سال آینده ده سال آینده خب مطلوب من این است که به کجا برسن ما این رو تبیر میکنیم به چشمنداز تصویر است چشمنداز آینده خب آینده متصور مطلوب و چهارم مرحله نقشه راه و اقداماتی است که یک نفر باید انجام بده تو مسیر قرار بده مذردان خواهی نامه کارشانسی عشدش رو خب در اون مسیر قرار بده و ادامه تحصیلش رو سعی کنه. تو اون قرار بده بعد ما و معیشت و زندگی همه اینها رو بتونه متمرکز دنبال بکنه. خب برای این چهار معلی توصیه ما به تدوین چشمنداز علمی برای پجوهشگران جوان و از برسوق قدمتتون نوکار هست که آینده موفقی رو بتونه برای خودشون داشته باشه. توصیه دوم عبارت است از اینکه که خب یک پنجوهشکر جوان باید کنجکاوی و خلاقیت خودش رو همراه با اعتماد به نفس دنبال بکنه. خب کسی که اعتماد به نفس ندارد همیشه خیال میکنه که نه من کیم که در مقابل بزرگان و مطلبی بگم خب خود سرکوبی انجام میده و نمیتونه موفق بشه. همیشه ما باید این شجاعت علمی لازم رو در پرسیدن در دنبال کردن داشته باشیم. اون کسانی که تقلیدیان خودشون عددی نسبت به دانش موجود نمیبینن همیشه خب اسیر باقی میمانند و صرفا توتی سفت ادامه زندگی میدن حتی اگر استاد دانشگاه بشه چون که سارت علمی لازم رو نداره ولی زبا من پیشنهاد میکنم که به هر کدوم از عزیزانمون اعتماد به نفس رو در خودشون سعی کنن که تقویت میکنن هر کدوم این اعتماد رو شاید شدت و ظرف داشته باشیم ولی به هر حال این کار رو ما باید بتونیم دنبال بکنیم مطالعه آثار برجسته بزرگان علم زندگی علما ما استادی داریم خدا حفظشون کنه همیشه به ما توصیه میکرد که بخواید موفق بشید زندگی و تجربه علمی علما رو مرور بکنید شاید این کار خوبی که دانشگاه تهران در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران الان این جلسه مسداقش برگزار میکنند تجربه زیسته تجویشگران برجسته خب از الگو بگیرن از اون سعی و خطاهایی که ماها مواجه شدیم برای آینده علمی خودشون زاد و توشه تهیه بکنند که این کار رو بتونن انجام بدن سومین توصیه به تجویشگران جوان من هست عزیزان من خواران برادران بنده که توصیه میکنم این رو انجام بدن همون توصیه است که امام جواد علیه السلام به ما فرموندن نحتاج المؤمن الی سلاس حسالن توفیق من الله و باعث من نفسه و قبول من منی هم یعنی اول قدم این است که غرور ما رو نگیره توقیان درونی ما از خدا قافل بشیم کار رو برای خدا و در راه خدا انجام بدهیم. توفیق من الله اگر نباشه دیدیم چه مدعیانی که بیراهه که نرفتن خودشون، نفسشون، خانوادهشون رو چه عذاب ندادن. استکباری که شیطان ورزید رجیم و رانده شد نتیجه همین بوده. از یاد خدا وافل نشد. نشدن. خب شاید و ها دیدیم که هر زمان خسته می شدن با نماز یک تجلی جلای روحی میدادند و دوباره خسته رو کنار می نشاط جدیدی پیدا می کردن خب مشاوره با همراه شدن با پژوهشگران با تجربه اساتید رفت و آمد با اینها هم از جمله توصیح های دیگره بنده است که به عزیزانمون من یک ساعتم تقریبا خدمت دعویر محترم جلسه مونم و عزیزان که یک ساعت بنده تقریبا به پایان رسید. در خدمتتون هستم از فرماشات شما بهرمند خواهیم شود اشانله یا ممنون متشکریم از وقت شما لطف فرمودید هم درباره زمینه علمی خودتون و تجربیاتی که در طی تحصیل و پژوهش داشتید و هم نقاطی که به نظرتون جذاب بود برای ما صحبت فرمودید دوستان اگر سوالی دارن ممنون میشن در کاد بنویسن یا گزینه لایک هم بزنن تا سوالش رو بسات صوت متعخب کنه از دوستان پرسیدند که اگر ممکنه درباره مباحث سیاسی قرآن که شما فرمودید و تفسیر سیاسی از خداوند درخواست کردید و مشغول این کار هستید که مقداد دا توضیح بدید چه آیاتی به نظر شما مسداق این آیات میتونه تلقی بشه و تفسیر شما از چنور تفسیر برای این آیات با تفاسیر پیشین چه فرقی داره وم کری جالبی رو از آقای دکتر عرفا عرض میکنم. ایشون خودشون فرماش بر فر بودن که با مدتی مباحثه تفسیر سیاسی قرآن کریم داشتیم حالا تعبیر ایشون رو من نقل میکنم شاید خودم به این درجه به این مطلب نرسیده باشم اما تعبیر ایشون این بود که ما وقتی بحث می‌کردیم به این در رسید که ما من آیت من آیات القرآن مگر اینکه یه بحث و دلالت سیاسی در درون خودش داره و جالب بود این که ایشون اینطوری بود اما به هر حال آنچه که من به نظرم میرسه در این سالهایی که در خدمت قرآن کریم بودیم اصلا خود مسئله قدرت رو ما چگونه باید در جامعه قدرت سیاسی اجتماعی رو تصور بکنیم ماهیت قدرت چیه قدرت برای چی؟ هدف از قدرت چیه؟ های قدرت خب این آیه ششوم سوره آل امران گلالله اللهم ما مالک الملکه توت الملک من تشا و تنز الملک من من تشا و توز من تشا و توزل من تشا و به کل خیر ببین این سیاست رو خدای متعال در این آیه فرمایش فرمودند که اونم این است که اصلا قدرت رو اگر درست بین از خدا نشد میگیرن حتی قدرت هایی که ادعاهای باطل دارن خب الان قدرت آمریکا قدرت چنگیز مغول و تاقیان طول تاریخ یا قدرت های شایسته مثل زلغرین کروش یا دیگرانی که در طول تاریخ نام نیک داشتند قدرتی که امام محدی سلام الله علیه داشتند همه نخوا از خدا نشد میگیره البته به معنای تکوینی خودش یعنی اینکه بدون اذن الهی هیچ تحقق پیدا هیچ امری تحقق پیدا نخواهد کرد لا حول ولا قوت الله الله ما رمیت عزت و لكن الله حرمه پس اولین باور به این است که قدرت هم به عنوان یک پدیده انسانی نشد گرفته از خداست خدا این رو میده البته یک تکوینا بحثه اما تشریعا هم هست خدا به چه کسی اذن تصدی قدرت سیاسی رو میده این مقام خلافت سیاسی رو چه کسی میده خب این لازمه ای که شایستگی هایی موجود داشته باشه. ازبتلا ابراهیم رب به کلمات فعتمهون که علیلی جائل کل ناسه اماما. خب این هست که دست خدا در انتخاب شایستگان برای منصب امامت هست. حتی ترخواست ابراهیم علیه السلام، قال و منظوریتی لا حالا یلال و ظالمین اینکه این مقام در مقام تشریف به ظالمان نمیرسه. شاید در مقام تشریف خدای متعال ظالمان را هم اجازه بختهی به قدرت بده اما قدرت مجاز قدرت مشهور رو نخواهند داشت خب از اساس سیاست همین توجه به فعل الله که منشه قدرت نه قدرت های ظاهری بلکه قدرتی که از ذات اقدس الهی نشد بگیره هم در مقام تکوین و هم در مقام تشریف خب البته در تفسیر سیاسی ما روکرد های سیاسی در قرآن کریم رو به مد نظر قرار بدیم که من یک مقاله ای در این زمینه نگارش کرده هم عزیزان میتونن مراجعه بفرمایند سال برزر 92-3 این مقاله چاپ شده ده سال پیش گوی کرد. های مطالعات سیاسی در قرآن کریم در فتنامه پجوش های پجوش این مجله که مال پجوش امام صادق علیه السلام هست پجوش سیاست اسلامی اونجا منتشر شده اجزا میدونه به اون مراجعه کنن خب الان من دقبقه ارسو خدمتتون یک دوره تفسیر سیاسی قرآن کریم رو دارم که از سوره علق 86 سوره در مکه نازل شده و با رویکرد کرده هم خیلی دلبستگی پیدا کردن کاره که درور گرامیمون آقای بحجت پور انجام دادن و فرمایشاتی خوبی دارند در تفسیر هم، همگام با وحی حالا تفسیر تنزیلی موضوعی رمیشون کتابی نگارش فرما چاپ نشده هنوز. ولی بعد حال برای ما که در سیاست داریم کار میکنیم پژوهش در حول تفسیر سیاسی قرآن کریم افتداعا و سپس مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم سیاسی حتما باید مد نظر قرار بگیره ان شاءالله. ببخشید خانم. همش این سوال چرا اگه ممکنه میشه فائزه، اگه ممکنه مستقل فائزه. ببخشید. درباره روش کار هم استاد پرسیدند که در این تفسیرتون فرمودید زیر چادر این تنزیلیه. ولی از چه استفاده میکنه کنی؟ نگه ممکنی توضیحی هم در این باره بدید. ما تفسیر موضوعی اولا می کار بکنیم خب یعنی موضوع خاصی رو از سختمتون که در موضوع سیاست قرار می گره در ما هست خود این تفسیر موضوعی می به دو قسم انجام بشه تفسیر موضوعی عامل سیاسی و تفسیر موضوعات خاص سیاسی خب که بحث سیاسی تقسیموندی های بسیار زیادی داره که یکی ممکنه مثلا پیشرفت سیاسی در قرآن کریم رو کار بکنه اما یکی ممکن اصلا شروع بکنه یک دوره جامع مباحث سیاسی رو در قرآن کریم همه مباحث رو انجام بده آنچه که بنده مد نظرم هست همون تفسیر سیاسیه به معنای عام سیاست هست. که همه موضوعات رو بتونیم در شبکه سیاسی قرار بدیم و این رو تبیین بکنیم. این دردقه اول من هست. اما به لحاظ کرد و روش من از بین روش های ای که برای تفسیر موضوعی هم هست. مثل تفسیر که روش استنطاقی شهید صدر. خب پرسش های زمانه رو استخراج بکنیم. عرضه به قرآن بکنیم تا تولید نظریه بکنیم. این میشه روش استنطاق شهید صدر. دومی روش استخراج بدون مهبر قرار دادن پرسش های زمانه. هرکر مطلع بشیم اما بریم ببینیم که ازاقور القرآن او له و انستتول لکم ترحمون از درون معارف قرآن چی درمیاد یعنی هجاب زمانه در تفسیر استنطاقی باعث میشه که ما خوب قرآن رو نشنویم گوش ندهیم بهره نگی، نگیریم رحمت علهی لعلکم ترحمو شامل حال ما نشود خوب هم یک رویکرده رویکرد سوم تفسیر موضوعی تنزیلیه که به نظرم برسه که تفسیر موضوع تنزیلی اینم زیبایی های خادث خودشو داره اصلا ببینیم که قرآن کریم خود به ترتیب نزول چه موضوعات سیاسی رو انجام میده چهارومی تفسیر موضوعی ساختاری یا بناییه که برخی از تجوکران ما این تفسیر موضوعی بنایی رو دنبال کردن و خب از این زاویه دنبال میکنه و چهار تفسیر موضوعی تدبیقیه. من اونغم عمدتا به اون تفسیر موضوعی تنظیلی و یا به جهاتی اون دومی که استخراجی باشه که از قرآن استفاده بکنیم. حالا اینم لوازم و نوشه خاص خودشو داریم که باید در جای خودش توضیح داده بشه. مستقیرم. در باده این نشتی که فهمود بحش دوستان پرسیدن که شما چطوری فهمودید که استاد بحشت بودم در این مورد کار کردن ولی این چطوری میتونیم ادعا بکنیم که واقعا تنزیل طبق این تحقیق بوده که ما الان داریمش کار میکنیم و مبنای این کار هایی یا ها؟ مبنای اونقدر قوی هست که ما میتونیم ادعا کنیم به اونجوری که واقعا در زمان نظور بوده با توجه به ا فقط بحث تنزیلی، خب کار شده. یه کتابی داریم که تفسیر تنزیلی به این عنوان نظریه تفسیر تنزیلی اخیرا کرسی نوآوری آی بحث‌گر ارائه کرده. کل اول کتاب همگام با وهر هم سعی کرده که توضیح بده. چندین مبنا در تنزیل صور وجود داره. که تفسیر تنزیلی داخل سوره بحث نداره چون این توفیفیه یعنی اینکه داخل یک سوره آیا چطور چیده بشه خب اینو پیامبر گرامی اسلام خودشون انجام دادن اما اینکه کدوم سوره اول اومده بعد سوره دوم سوره به سوره میرن جلو آنجا که مورد استناده از روایتی از امامالی علیه السلام از طریق راویشم ابن عباس داره نقل میکنه که از جمله مفسران صدر اسلام هستند. خب این جدولی در آمده که 86 سوره مکی اند و 28 سوره مدنی هستند. سوره توال قران کریم در سوره مدنی قرار دارند. حالا جزئیاتش رو علاقمندان میتونن در اون کتابا که موجوده در سایت حجت الاسلام بهجتپور مراجعه بکنند. خوب اینم خبری از بکنم که موسسه یا مرکز تخصصی تفسیر تمهید که بنده توفیق دارم جوزه هیئت و و شورای علمی اون مرکز باشن در خلده های بحجت بود علاقه مندان سطح چهار رو اونجا دارن آموزش میدن و حتی اگر آموزش هم نخواستم ببینن در زنبیلابا خیابان فجر انتهای خیابان فجر کمی مونده به این چراغ قرمز اون مرکز موجوده میتونن بهشون به این مرکز هم مراجعه بکنن اطلاعات بیشتر رو اخذ بکنن برحال بنده جزء علاقمندان و پیگیران تفسیر موضوعی تنزیلی هستن خیلی مستقیم مستقیم کنم به حسن حس خطاب سوالاتمون پرسیدن که با هر روش رسیدن به موضوعات مختلف چهونه است اگر ممکنه توضیح بفهم؟ بله سوال بسیار خوبیه اولین راه این است که خود پجوشش از درون بجوشه ببین کسی که دغدغه چشمانداز علمی داره خب انباشته علم در اون صورت میگیره خب انباشت علم سازمان یافتگی علم باید چونه که ها اشراف خوبی به, م... به م... یافته های علم داشت باشن ها رو زود بشناختن شاید کسی که ممهزه زودتری یه علمی رو بشتاسه روزم این است که اولا خب اون تمحوز و تمرکز علمی رو در غالب چشمنداز علمی پیدا بکنند که بتونند مجهولات رو زودتر ببینند و دومی، دویجه برای نسل جوان ما، پژوهشگران جدید ما، هم همعیاخ شدن در واقع خاک همنشینی با پژوهشگران و علما رو خوردن خودش بهتر میتونه. نشستن در مراکز، در گفتگوها و نشستا گفت و ها بسیار خلاقیت در ذهن نسل جدید ما، ایجاد بکنه و این دو تا نکته بسیار کلیدی هستند که خود و جوش و درونزا اون نیازهای های رو بشناسه. بله خوب نیاز تنجی های الان مراکزی دارن انجام میدن به پژوهشگران معرفی میکنن ولی بهران اونا درونزا نیستن دیگران این کار رو رسیدن و شاید کسی هستن تا بخواد به اون زمان ببره و هم سوال از پژوهشگران موجود خب مراجعه و مراکز علمی راه که ما رو به در واقع اون دقیقه های میتونه درسانه. خیلی متشکرم هم استاد پرسیدن شما تماسیم از مرکز تمهید که فرمودید داری انگار بعد در دستان علاقه همکاری داشته و میخوام به طریق بتونن التماس بقرار بکنم من تلفن مستقیمی تلفن ثابت ندارم ولی دوست عزیزمون آیه عزیمی خب من که متأسفانه شماره ایشون رو ندارم خب عزیزان شماره منو یادداشت بکنن که پیگیرن خب به من پیامک بدن چه در ایتا چه در پیامک موبایلی من مونا رو متصل میکنم تلفن من 912 و دوازده 82 هست به منم اگر پیامک بدم من اونا رو بحث خواهم کرد فکر میکنم دیگه اگر شما اجازه بده فرمایید. با... شما اجازه به فرمایید استاد آخر نکاتتون رو بشنویم تا ان شاءالله بعد از بود جلسه به پایان ببرید. خب منم من از حضرت علی که زحمت اداره جلسه کشیدید و برگزار کنندگان این سلسله جلسات در معاملت پژوهشی دانشکده الهیات دانشکتگان فارابی دانشگاه تهران و به ویژه دوست عزیزمون جنبای دکتر موسوی مقدم که تماس را و این زمینه ارتباط رو فراهم کردند، بسیار تقدیر و تشکل میکنن فقط یک توصیه کلی داریم که نال الله و انا الیه راجعون در اون آشفت بازار علمی که به نام علم کارهای صورت میگیره ماها باید توجه داشته باشیم که مبدع و مقصد ما کجاست؟ انا لله و انا اله راجو فقط یک استرجاع در مصیبت ها نیست بلکه در شادی ها بلکه در علم و پجوهش هم هست اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفقیز و این چیزی بوده که ما طلبهی که شروع کرده بودیم با این حدیث ما آموزش می و اصافاً حدیث بسیار زیبا و عرضشمندیه که ما اگر بخوایم علم نافه رو داشته باشیم باید از ذات اقدس الهی بحرمند بشیم و استماع و بهره مندی از علم هفته آلا بشیم. اشان الله این لیافت رو خدای مطمئن به ما و همه ما شما عزیزان انایت بفرماید. دارم از محضر شما استاد عزیز لطف فرمودید به و همچنین از محضر دوستان عزیزم که اصولا در نشستها و همراه ما هستند. خدا شد نشست بود در محضر اصطال هم استفاده کردیم از تجربیات شخصیشون و گام های تحصیلشون و گام های و هم دخواست بده دار. بخواهم که انشالله بزنید که باشه. برای عزیزانی که استفاده بکنن و در این حال امیدوارم دوستان که ما با روش تفسیر استاد انشاءالله بعد از کارها شما پیش ببرن و اصاس دوتی که ایشون فرمودن و شما اشون در اختیار قرار دادن بتونن مرتبط بشن و این هم خودش یک راهی باشه برای عزیزانی که امکان در این فرمود قدم بردارن بسیار ممنون و متشکرم از محتر شما استاد خیلی دوت فرمودید باعث افتخار ما بود که در نشسته که با پنجم در محضر شما باشیم. خدا شرک هم با حضور دناب اصطاد قدرت اول های دکتر دکتر غلام رضا به روزیلت استاد گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقرالعلوم به اتمام رسید. انشالله که استاد و خانواده محتمشون در کمال سربلندی و سلامتی و در سای سای لطف خداوند موفق و معاید و مسلور باشند. همه شما دوستان عزیزم رو هم به خدای بزرگ میسکنم نهایت تشکل رو ازتون دارم خدا به شما هم سلامتی بده موفقیت و سربلندی. ما هم از دعای خیرتون مخصوصا در این روزها و شب ها فراموش نکنیم هدیه به روح متحرق قانون حضرت زهر سلام الله علیه ها قاطعی دطفا بخونیم و سرواتی بفرستیم و با این سروات ا ا تلاش همونو به اتمام خدا نگهدار همه گیر شما باشه شبتون بخیر و موفق و معید باشید حالان رجال زادگان از هزتالی من بسیار سپاسودارم مجدد از برکزار این شهر. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. شکرم اشتاد. دوست به شما. خدا به شما خیلی بده. خدا نگهدار کن باشه. انشالله که در آینده هم در, در سوات دیگه و گلتت دیگه بتونیم از محضر شما استفاده باشیم. ممنونم ازم.